نه خشن است نه مهربان آب نمی شود یا از جا کنده نمی شکند. سنگ نمی شود برای همین نمی تواند حس کند درد، حوث، پشیمانی را نوکی ندارد که روی آن بچرخد اصلا بیشکل است فقط یک تکه ازوله زخیم کج و ساکت ولی من می توانم صدایش را درون قفسش حس کنم یک زرباهنگ آهسته یک نباخت میخوام، میخوام، ولی نمیتوانم بازش کنم، کلیدی نیست، نمیتوانم آشکارش کنم یا احساسم را از ته آن برایت بگویم بیا، حالا همش مال توست، ولی باید من را هم با آن ببری سلام، علی سخاوتی هستم با برنامه سوم پادکست 822، امروز دوشنبه، صبح دوم اسفند 1395، همچنان میتونید به آدرس 822@alisekhavati.com در زمینه این پادکست ایمیل بفرستید یا روی وبلاگ من به آدرس alisekhavati.com جایی که این پادکست منتشر میشه کامنت بذارید. خیلی ممنون اول از همه ای تنها ایمیلی رو که این هفته رسیده بخونیم. با سلام و احترام یک علاقه مدیران به دانستن اطلاعات زیاد و بیهوده در فرمها را نمیتوانم درک کنم خاطرم هست در دولت قبلی برای طرح فرم فرمهای بسیار بزرگی داده بودند که هر خانواده باید پر میکرد وحشتناک بود واقعا با این حجم زیاد اطلاعات چه میکنند هدر دادن کاغذ و وقت و انرژی و نیروی انسانی افسوس افسوس دو این جمله خیلی جالب خیلی جالب بود تمرین این رو داشتم که بتونم شخصیتش رو خرد کنم. من اینو گفتم این حرفتون منو به فکر انداخت قبلا وقتی با آدم های مواجه می شدم خیلی عصبی می شدم و دوست داشتم خردشون کنم و بهشون بفهمونم که لاف زدنشون خیلی زننده است و من میفهمم که دروغ، اما به تدریج متوجه شدم باید رفتار آدم ها رو درک کرد و واکنش مناسب نشون داد وقتی آدم وقتی اون شخص رو به عنوان یک بیمار و رفتار ناهنجار اون شخص رو به عنوان یک بیماری فرض می کنم راحتتر میتونم واکنش مناسب نشون بدم و خشمگین نشم مثلا در مورد همین لاف زدن مثلا در مورد همین لاف زدن حالا با تحیید کردن طرف مقابل و یک لبخند کوتاه میبینم که قضیه راحتر حل میشه شاید بتونه این موضوع سوژهی برای پادکست بعدیتون باشه فکر کنم بتونه سوژهی برای پادکست بعدی باشه ببینید منظور من از نایس بودن این نبود که شخص مقابل رو به عنوان یک بیمار فرض بکنید و رفتارش رو به عنوان بیماری یا اینکه که سعی کنید رفتار آدمها رو من... من سعی نمی رفتار آدمها رو درک بکنم البته درک میکنم که شما سعی می‌کنید رفتار آدمها رو درک بکنید و واکنش مناسب نشون بدیم این قسمت واکنش مناسب نشون دادن به نظر من کلید ماجراست و اون هسته نایس بودن ما بقیش یکم... یکمی زننده است در بهترین حالت اگر بخوام بگم شما چجور به خودتون اجازه میدین که اون فرد رو با گفتن چند جمله یعنی شنیدن چند جمله از اون یک بیمار تصور کنید و خودتون رو بالاتر از اون یعنی یک آدم سالم و اون رو بیمار و رفتارش رو بیماری تصور کنید این یکم بیانصافی نیست اگه اینجوری باشه همه ما بیمار هستیم یعنی رفتاری که در هر صورت در یک در یک تعامل اجتماعی در یک ستینگ اجتماعی برای یه ادهی قابل قبول نیست زننده است معذب کننده است ناراحت کننده است یا هرچی و باعث میشه که اونا واکنش مناسب یا نامناسب نشون بدن هر کسی در یک موقعیتی قرار میگیره که یه همچین چیزی از خودش نشون میده این به این معنی نیست که دیگران میتونن به راحتی اون رو بیمار تلقی بکنن و با این تصور اینکه اون بیمار هست به خودشون کمک بکنن که واکنش مناسب نشون بدن. نه این, این, این, این رو من باش راحت نیستم. خیلی خیلی راحته که یک فردی رو احمق، خر، بیمار یا هر چیزی دیگه ای تصور بکنید. ولی اینکه به رفتاری یک نفر، رفتاری یک نفر رو احمقانه بتندارید و اینکه اون فرد رو احمق، دو تا چیز متفاوته. شما در سطح رفتاری یک نفر امکان داره یه کار احمقانه ازش سر بزنه ولی می معنی نیست که اون رو دم آدم ماده احمقیه. احمق خطاب کردن یک نفر میشه چیستی اون طرف هویت اون طرف. شما هویتش رو با یک کار با دو جمله با یک عکس العمل تنزل تنزل میدید به احمق به اولاق و این و این با توجه به اینکه همه ما در موقعیت‌هایی که منافع خودمون رو در خطر می‌بینیم و می‌ترسیم و احساسی رفتار می‌کنیم منطق رو مجبور می‌شیم یه مدت بذاریم کنار رفتاری میکنیم که خیلی از دید خیلی دیگه احمقانه بیشعوری یا, یا یه همچین چیزیه نایس بودن به نظر من به این برمیگرده که کاری رو که یک طرف میکنه با هویتش میکس نکنیم قاطی نکنیم اینکه اون طرف چی امکان داره حرفی بزنه که کاملا احمقانه ابلهانه بیشعورانه اه، یا اه، یا مقرانهه یا هر چیز دیگه ای باشه ولی ولی خود فرد و شخصیتش. این شخصیتش یعنی شین که این آدم یک آدمیه که به, به طور یک بارچه بعضی وقتا با بعضی وقتا بیشوره بعضی وقتا راست میگه بعضی وقتا دروغ میگه اینکه یه طرف جمله میگه که نمیشه گفت یه آدمی دروغگوه همه آدم ها بعضی وقتا دروغ میگن شما چهجوری میتونید به یه نفر به دروغگو میتونید به نفر این ایمپالسیب لایر یعنی بدون دلیل در هر موقعیتی که پیش بیاد دروغ میگه ولی با شنیدن چارتا دروغ از یه نفر نمیشه به راحتی اسم دروغ وروش گذاشت صورت سه ما هم در منطقه خودمون به جای خریدن گوشت از قصابی گاهی گوزفند میخریم اوکی چهار برخی افراد که دوچار ای وحشتناک مثل از دادن فرزند یا داشتن تجربه بیماری لاعلاج هستن پرحرف میشن علتشو نمیدونم شما میدونید واقعا دلیل علمی داره یا نه انگار حرف زدن باعث تخلیه تجربیات سختشون میشه این شخص مورد نظر شما که بیزنسمن هم بوده دیگه بدتر چرا باید دلیل علمی داشته باشه؟ خب خیلی پرحرفن پنج نهال. در مورد چیدن گل من این حس رو دارم و فقط میتونم بگم اون لحظه دلم میخواد دست طرف مقابل قطع کنم تا بدونن چیدن شاخه و گل از داقیه که جونش بهش وابسته هست چه حسی داره فکر میکنم این موضوع تا حد زیادی به آموزش های کودکی مربوط هست مثل خیلی از کارهای دیگه مثل پرد کردن آشغال در خیابان به آموزش های دوران کودکی مربوط هست امیدوارم شما تنها کسی باشید از شنوندگان پادکست که اینقدر همه چیز رو به آموزش دوران کودکی مرتبط می‌کنید یعنی به نظر من علاقه زیادی به نظریات فروید شما دارین شش در مورد ام MM به نظرم در پادکست شما آزاردهنده نیست شاید اگر شما پشت تریبون بودین و ما توی یک سالون روبره شما مینشستیم تحملش سخت بود ولی من فکر می‌کنم در پادکست دست منفی نمیده خوشحالم اوپس هفت از اینکه ایمیل من رو در پادکستتون خوندید ممنون خیلی برام مهیج بود در مورد شغل خانهداری که ارزگنبری خانم ها مناسب ترین شغل هست بله فکر میکنم با روحیات زنانه سازگارتر هست اوپس حضور در جامعه کمی آدم رو خشن و مردانه میکنه و از زنانگی کم میکنه اوپس البته خیلی کارهای دیگر هم باعث مردان شدن زنها شده مثل رانندگی تو پرانتز الانه که مخاطبان خانم منو تیر بارون کنند این به منای در کنج وزدت نشستن نیست منظورم از خانداری انجام کارهای لطیف هست شاید مثلا انجام کارهای هنری هم در همین تیف باشد به هر حال بودن, محیط بودن در محیط خشن و حفظ رویات لطیف نیاز به زحمت داره و هر کس که بتونه تعدل رو برگر کنه معف با رزومه موفقیت برای همه خانومها ها با تشکر فاطمه زهرا پاکزاد خب این خانوم بود این خانم بودین کسی که معتقده خانهداری بهترین شغل برای خانومها ها خانداری بهترین شغل برای خانم ها خانداری بهترین شغل برای خانم ها معنیش اینه که هر شغلی بجز خانداری بهترین شغل برای آقایان هر شغلی بجز خانداری این عجیبترین دسته بندی که بشر تا به امروز انجام داده عجیبترین دسته بندی در هر صورت شعری که اول پادکست براتون کندم اسمش بود Heart to Heart نوشته ریتا داف ترجمه یورز ترولی یعنی خودم خانم من متقدی که من خیلی بچهر میخونم اه یعنی اه منظورش که که یعنی خودش توضیح میده که هیچ حسی در شعر خوندن من وجود نداره و مثل گوینده های خبر شعر میخونم البته من همیشه باش مخالفت کردم و دو سه بارم بحث کردیم تو این زمینه و نتیجهش این شده که بریم از سه چهار نفر بپرسیم و من چون میدونستم که اون سه چهار نفر احتمال زیاد نظرشون مثل نظر خانممه مخالفت کردم با این پیشنهاد البته من خودم میدونم که با حسی که دارم شعر میخونم و شعری که شعری می میخونم کاملا بدون حس نیست یعنی چجوری میتونه یه نفر بدون حس شعر بخونه خب هر کسی به حس خودش و مطابق حس خودش شعر میخونه مگر کسی بتونه فیک بکنه عداش در بیاره یا یه هنرپیشگی در شعر خوندنش به خرج بده مثل مثل شعر خانهای حرفی یعنی گوینده های که دکلمه میکنن و خیلی وقتا ش... از اونا وقتی من شعر میشنوم، منو من میکنه معذب میک شاید این هم به دوران به آموزش های دوران کودکی برمیگرده نمیدونم شایدم به خاطر افسردگیه شایدم به خاطر اسبرگره شایدم به خاطر شایدم به خاطر نداشتن تمرینه شایدم به خاطر نخواستنه شایدم به خاطر اینی که من خوشحالم با همینی که همین جوری که شعر میخونم از همین مدل شعر خوندن لذت میبرم من نمیخوام تغییرش بدم شورا به خاطر همه‌ی این دلایل با هم دیگه است. در حسابی که بخواید شرکوندن منو یک یک دسته‌بندی بکنید میشه گفتش که شرکوندن من یک یک رکود احساسی داره یعنی نه احساس درش هست و نه نیست. ولی این احساسی که درش هست دچار رکود شده. یک یک سکون احساسی درش وجود داره. مثل مثل رکود اقتصادی که زمانی که یک اقتصاد یک کشور دچار رکود اقتصادی میشه شما نمیتونید بگید که اقتصاد کار نمیکنه کاملا تعطیله و نمیتونید بگید که اقتصاد چرخ اقتصاد داره میچرخه یه،, یه وضعیت یه وضعیت خاصیه که با کلمه رکود بیان میشه رکود به انگلیسی رکود اقتصادی به انگلیسی دو تا،, دو تا کلمه براش هست یکی ریسیشن یکی دیپرشن ریسیشن uh, مال زمانیه که uh, رکود خیلی شدید نیست و وقتی این رکود خیلی شدید میشه میشه دیپرشن uh, شاعرانش اینه که شما uh, زمانی که میبینید همسایتون شغلشو از دست داده بیکار شده میشه ریسیشن، وقتی که خودتون کارتون از دست میدین میشه دیپرش من چند روز پیش رفتم نونوایی که نون بخرم در یکی از این مجتمعهای نانوایی که سه جور نون رو یک جا میفروشن سنگک، بربری، تافتون و دیدم که پرنده پر نمیزنه و نونواها نوناشونو رو پختن، گذاشتن روی میز نشستن و به در نگاه میکنن من یک بربری و سه تا تافتون خریدم خانومم به تافتون علاقه داره من خودم ترجیح میدم دم بربری بخورم حتی ترجیح میدم دم مثلا نون نخرم و نونم رو خودم بپزم یکی دیگه از پروژه که شروع نکردم و اونکارم به زودی شروع کنم و نونم رو خودم بپزم که البته این موضوع این پادکست نیست داشتم در مواد رکود رکود احساسی و رکود اقتصادی صحبت می کردم رکود نقطه مقابل تورمه تورم زمانی که اقتصاد با شدت و هیجان خیلی زیادی داره رو به جلو میره و رشد میکنه. هم قیمت ها رشد میکنه و هم هر بیزنسی که یه سری چیز به مردم میفروشه از نون گرفته تا خودرو تا خونه تا لوازم خونه هر چیزی که فکر بکنید. تقاضا برای, برای هر آشغی که توی بازار فروش بره هست، این تقاظایی زیاد باعث میشه که قیمت ها بالاتر بره عرضه و تقاظا قانون اول اقتصاد چی داشتم میگفتم و همین, همین تورمی که باعث رکود میشه یعنی اینقدر مردم میخرن و میخرن و میخرن که یه جایی فکر میکنم قبل از این که رکود اقتصادی بشه جامعه و اقتصاد خود مردم در یه سطح گسترده دوشار رکود احساسی میشن و میفهمن که خباله با این همه آشغالی که خریدن چیکار بکنن این همه خونه که ساختن و حالا بیشترش خالیه چه باید کرد چرا ما این همه توی سالیان گذشته خونه ساختیم من فکر میکنم در درون خودشون جامعه به شکل به شکل کلکتیو به, به, به, به, به, به, به, به, به, به شکل جمعی به این نتیجه میرسه که یه،, یه کار احمقانه در سطح کلان انجام داده و یه مقدار دوشار عذاب وجدان میشه یه مقدار دوشار افسردگی میشه و اسلو داون میکنه یکم رو کم میکنه و این سرعت کم به زرر یه دست ولی در این حال به نفع عده دیگری و به نفع محیط زیست آشقالهای کمتری تولید میشه خریده میشه بیرون انداخته میشه بیمسرف رها میشه و این اصلا چیز بدی نیسته من فکر میکنم یه مقدار به خاطر سنم که از چهل گذشته دچار رکود طولانی تری نسبت به دورهای قبلی سنیم شدم یعنی قبلا وقتی دوچار یه همچین رکودی میشدم بعد از یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه با دارو بدون دارو برطرف میشد و یه هیجاناتی یه قلیاناتی به وجود میامد که متورم میکرد زندگی احساسات و تصمیمات من رو حالا میبینم که کمتر دوچار این تورم ها میشم تورم مثل،, مثل دوران بلوغ میمونه یه،, یه بچه دوازده سیزده ساله رو تصور بکنید که همیشه متورمه صورتش متورمه اصافل ازش متورمه همه جاش متورمه و این اصلا تورم رو نمی‌تونه کنترل بکنه و این دائما رشد میکنه هی hey, رشد میکنه امروز کفش میخره فردا به پاش اندازه نیست اینقدر رشد میکنه که مانبوباش دیگه نمیدونه چی کار باش من فکر میکنم اقتصاد و جامعه هم یه همچین وضعیتی داره در زمان تورم اینقدر رشد میکنه و اینقدر اشغال تذریق میکنه به اقتصاد به مصرف کننده ها که از خود بی خود میشه و بعد از یه مدتی بعد از گذشت از این از خود بیخود شدگی ادما به خودشون میان نمیتونن به خودشون بیان فکر میکنین که این خیلی ها فکر میکنن که این رکود اقتصادی به خاطر تحریم یا به خاطر یه سری چیز چیزهای دیگه از عوامل کلان و بین منطقی و اقتصاد جهانی و این چرت و ولی رکوت یا یه جنبه زندگی انسانی بخشی از کاندیشن زندگی انسانی که ما درش هستیم این بعد از تورم احساسی که ما داشتیم و دوزار پول درآورده بودیم یه پروژه گرفته بودیم که فکر میکردیم حالا باهاش میتونیم یه خونه،, یه خونه داشتیم یه خونه دیگه بسازیم دو تا ماشین دیگه بخریم و فلانجا هم سرمایه گذاری بکنیم به ما یاداوری میکنه که اه اه لزومن اینا درست نبوده و کاملا بر اساس احساس احساس متورم شده تصمیم گرفتیم چه لزومی داشت که ماشین لباسشویی که داشت کار میکرد و عوض بکنیم برای یه ماشین لباسشویی که حالا در حین کار هم میتونیم بهش لباس اضافه بکنیم ماشین لباسشویی بعدی چیه؟ ماشین لباسشویی که در حین کار بتونیم یکی از لباسهایی رو که به اشتباه توش انداخته بودیم در بیاریم. گوشی تلفن بعدی باید به جز زده آب بودن و ضد ضربه بودن و ضد نمیدونم حساسیت بودن چه خاصیتی داشته باشه که نیازهای احساسی ما رو براورده بکنه این باعث،, این باعث میشه که وقتی همچین سوالایی از خودمون میپرسیم به شکل خودآگاه یا به شکل ناخودآگاه به رکود برسیم و این رکود خیلی خیلی چیز خوبیه زمانی که شما میتونید یکم فکر بکنید، تأمل بکنید، به نیازهای اساسی خودتون یعنی همون نون نون و یه سری چیزهای خیلی ساده دیگه که میتونه شما رو سیر بکنه برگردیم. و بفهمید که لزوماً برای گرفتن و تأمین پروتئینه بدنتون نیاز به گوشت که لوی ندارید لزوماً این،, این معنیشی نیستش که ما هفته پیش گوستفند نخریدیم ولی واقعا برای تأمین پروتئین نیاز به گوشت نیست و سن شما از چهل به بعد یعنی از چهل که رد میشه میفهمید که غذای زیادی اصلا نیاز ندارید با, با یک سوم یک چهارم حتی یک پنجم میزان غذایی که در دوران تورم میل می کردید میتونید خیلی راحت سیر بشید و احساس سبکی و شادابی داشته باشید اصلا بیشتر از اون اگه بخورید سلامت و خطر میافته و خیلی چیزایی دیگه همین رو گفتم که بگم من در دوران رکود احساسی هستم و گهگداری خیلی به ندرت دچار تورم احساسی هم میشم اونتا رکوده بیشتر از تورمه برعکس دورهای قبلی زندگیم که تورم بیشتر از رکود بود به نظر میاد که وضعیت اقتصاد جامعی هم که توش زندگی میکنیم حتی اقتصاد جامعه جهانی دوران رکوداش داره بیشتر از دوران تورماش میشه و اقتصاد همه کشورها به نوعی سلو داون کرده من فکر میکنم خرد جمعی یا حماقت جمعی به نوعی در تکامل چندین ساله یا چند قرنی که مصرفگرایی و کپیتالیزم خودش نمایان کرده به عرصه اقتصاد به جایی رسیده که مردم بیشتر در رکوت زندگی می تا در تورم این, این من در هر صورت بریم به چندتا تا کامنت دیگه بخونیم فاطمه گفته عالی بود نظرتون چیه جلسه در مورد این برگزار کنید که چطور آدم های نایستری باشیم خیلی بهش احتیاج دارم اگه خیلی بهش احتیاج دارید منم بهش احتیاج دارم من فکر میکنم میتونیم یه جلسه برگزار بکنیم یه جلسه برگزار میکنیم جلسه برای نایستر بودن پنج شنبه من واقعا ندیدم که یه آقایی داره سعی میکنه دندرقب بیاد و دوبل پارک کنه من خیلی راحت رفتم جای پارکش وقتی شروع کرد به بوخ زدن و من متوجه شدم بهش اشاره کردم اوکی بره جلو من بتونم از جای پارک در بیام اما تکون نمیخورد همین همین ضمن چند تا از مغازداروی اون محدوده که موبایل فروش هم بودن اکثرا جمع شدن. من با آرامش گفتم شما برو جلو من میرم. گفت دروغ میگی میخوای کامل پار کنی. و در حالی که ماشینش و جلوی ماشین من گذاشته بود خودش رفت پشت ماشین من ایستاد واو که نتونم حرکت کنم من پیاده شدم زنگ زدم پلیس اصلا نذاشتن من حرف بزنم. آقایون شروع کردن به مقصر و دروغ جلوه دادن من البته پلیس عزیز هم اصلا به ماجرا توجه نکرد و فقط میخواست اونجا خلوت بشه. پلیس واقعا چه،, چه کار دیگه ای باید میکرده. خلاصه من که از اولش هم قصد دعوا نداشتم رفتم. به نظر خودم کار بدی نکردم اما دوتا از دوستام که تو ماشین بودن و از قضا همکار اصلا پیاده نشدن و گفتن من هم نباید پیاده می شدم. نباید زنگ میزدم پلیس. اصلا در شعن یه خانم دکتر نبوده با این آدم بحث کنه باید میگفتم حق با شماست فقط اجازه بده من برم با این کار فقط بری خودم درد سرداز کردم چون تجربه مشابه فراوانی داشتم و متاسفانه حتی با سعی در دفاع از خودم خیلی جاها مغلوب شدم احساس میکنم منم باید تمرین کنم نایستر باشم ولی همیشه بعدش یادم میفته که اوا نبودم اوا ایوه نبودم ایوهش 5 تا دا علف داشت من نمیدونستم چجوری باید بخونم به نظر من شماتون تون ماجرا به اندازه کافی نایس بودین ولی در تعریف کردن ماجرا ذرایفی من میبینم که نشون میده خیلی هم شما آدم نایسی نیستین مثلا اینجا که گفتین یه خانم دکتر نباید این کارو میکرده این نشون میده که معتقدین خواب اگر خ... به جای یه خانم دکتر یه خانم مهندس یا یه خانم آرایشگر یا یه خانم خانedar که بهترین شغل برای خانماست اگر اونجا بود میتونست این کار رو بکنه و این این اصلا نایس, نایس نیست جایی دیگه به موبایل فروش بودن مغازه دارا اشاره کردین که باز به نظر من یه مقدار از ریسیزم درش هست و هرچی که شما مسئله رو ریسیستی بکنید از نایس بودن به نظر من خارج میشین یه جای دیگم گفتین که آقایون شروع کردن به مقصر و دروغ جلوه دادن من دوباره مسئله ریسیستی شده و جنسیتی و اینکه یک گروهی با یک گروه دیگه یعنی آقایون با یک گروه دیگه هستن مشکل دارن تئوری من اینه که نایس بودن یعنی که شما ابژکتیف نیموندین و هدفتون این بود که از پارک خارج بشین زمانی که آقای رفت پشت, پشت ماشین شما وایسات اه... نمیدونم کلید رو میدادی... میدادیم سویچ ماشین رو به خودش که میگفتین خودت ماشین منو رو ببر بیرون ولی این که داشت شما رو یه... یه... به دوزده یه بنوی بعد باید ابژکتیف میکردیم قضیه رو اینکه به پلیس سنگ زدین نایس نبودن به نظر من نبوده نایس بودید به پلیس سنگ زدین و هدفتون این بوده که از پارک خارج بشین این تیکش کاملا نایس بوده و میخواستید مغلوب نشید ای اینا همش نایس بوده همین خانوم از این از جواب به یه کامنت دیگه است خوب بود مرسی در جهت نایستر شدن پیشنهاد میدم کتاب آینه دوستیابی رو هم بخونید اون موقع متوجه میشید تمام جوابهایی که به بیشتر کامنت های ما دادین خیلی غیر نایس بودن من فکر می کنم اون آقایی که اصرار داشتن پول بطری سرکه را میدن و میرن منظورشون این نبوده که دارم پول میدم بلکه منظورشون این بوده که تند چیزی که من میخوام حساب کنم همین سرکه است و قاعدتاً یک بوتری سرکست احتمالا لیست خرید بلندبالای شما سوتر حساب میشه شما چطور حد زدید که لیست خرید من بلند بالا بوده؟ ایشون یه سرکه میخواست بخره و من یه دونه بیسکویت، یه دونه شیر کاکائو و یه دستمال کاغذی این کل چیزی بود که من امروز داشتم میخوایدم. نمیتونم لازم توضیحم در مورد کامنت قبلی خودم بدم یا نه فقط باید بگم درست متوجهش نشدین و اینکه فاز کامنت من تا حدودی به سخنرانی های تد خانوم برن براون در مورد شر معاصیب پذیری و البته کتاب محبت کامل نبودنشون مربوط میشه برای دوستانی که با کامنت گذاشتن مشکل دارن منم این مشکل رو داشتم و بعد فهمیدم با یک بار ریفرش کردن این کد امنیتی اوکی میشه جواب من به کامنت های شما غیر نایس بودن اگر اگر واقعا غیر نایس بودن من معذرت من من میخوام در زیر این کامنت فاطمه گفته اعتراف میکنه که بارها کامنت نوشته اما چون از جوابهای غیر نایس میترسیدند و آقای میترسیدم میترسیدن پاکش کردم از جواب غیر نایس شما میترسید چطور؟, چطور میشه از جواب غیر نایس ترسید؟ به نظر من شما غیر نایس بودن رو با یه چیز ای دارید میکس میکنید منظور شما این... این نیست که من غیر نایسم منظور شما اینی که شاید حدث من اینه که اینجا سرشار از محبت عزیزم فدادشم برونت برم نیست که البته اعتراف کنم هم هست یعنی این ویبلاگ و این پادکست جایی نیست برای این که من تبروم احساسی به نمایش بذارم چیزی که واقعا ندارم اگر کسی خوزه ولی بگی اگر چیزی کسی کسی چیزی بگه که به نظر من قابل به چالش کشیدنه من این کار رو میکنم و شما هم قاعدتا همین کار رو انتظار دارم که بکنید و میکنید ترس برای چی؟ چرا بعد از به چالش کشیدن هم دیگه بترسیم؟ جایی که هیچ خطری سلامتی هیچ کسی رو تهدید نمیکنه کامنت بعدی از سجاد آقای سخاوتی بسیار خوب برای این پادکست ها در مراودات اجتماعی حساسیت خودتان را پایین بیارید استفاده زیاد از کلمه احمقانه و کنایه ها تو پرانتز استخانه تو هم است کلمات اینچنینی که با شدت به کار میبرید نشان از آزار دیدن حس و روح شما از وقایه اطراف است چه کسی از وقایه اطراف حس و روحش آزار نمیبیند؟ کسی که حس و روح ندارد. اینا رو من گفتم در تعامل با مردم بیشتر گذشت داشته باشید حیات وحش انسان ها مکان ایدئال ذهنی و روحی شما نیست حیات وحش انسان ها مکان ایدئال ذهنی و روحی شما نیست خیلی ها کارهایی میکنند و به حساب زرنگی میگذارند نباید شما واکنش نشان دهید. خود دیلکارنگی داره صحبت میکنه مثلا آقایی که گفت پولشو میدم و میرم به نظر من اصلا نیازی به واکنش شما نبود واقعا عجیب است یا جالب نیست یا چندان خوب نیست که در این سن درگیر چنین مسائل اجتماعی ریزی هستید در این سن باید درگیر چه مسائلی باشم اگر قرار بر اکسل عمل اجتماعی باشد در طول روز باید به خیلی زیاد رویدادهای آدمهای اطرافتان واکنش دهید من به دلیل تعاملات بسیار کم اجتماعی نیاز به این واکنشو پیدا نمیکنم و کارهای آنها را بی جواب نگذارید. فقط برای اینکه شما سر هر مسئله خیلی ریز ریز و درشتی شوکی طی میکنه. تو پرنتز مثلا فلان بانک با فلان کارمند ها و فرم و گرفتن اطلاعات زیادی از شما یا کد پستی یا رقمی بسیار فکر می بیش از حد نورمال نورمالش شوکی تهی میکنه. در حالی که اجتماع محل فکر کردن نیست. فکر کردن جلوی حرکت را می گیرد و از هر جهت که علاقه دارد به مسئله نگاه می کند و از این, که، از این کار لذت می برد. ولی در اجتماع حیوانی که ما حضور داریم، ما در اجتماع حیوانی حضور داریم، فقط حرکت هست و اتفاقها خودشان می افتند. اگر قرار بر فکر کردن بود ما هرگز وارد اجتماع نمی شدیم. این یکی رو درست گفتیم. چون فکر کردن می گوید حرکت نیاز, نیاز نیست. فکر کردن میگوند حرکت نیاز نیست این هم یک فرض شماست در بازگویی رویدادها به موضوع ماجرا و اصل داستان بپردازید و از ظواهر مثل استفاده زیاد از کلمات انگلیسی و رسمی پرهیز کنید این هم حساسیت شما را نشان میدهد مهراندخت سلام ممنون وقتی اون گفت پولش را میدم و میرم واقعا جواب ندادن خیلی سخته مثل اینکه یه توپ به طرف پرتاب بشه و اکسولمل نشان ندی اگر من جای شما بودم احتمالا ناخودداگاه می لطف میکنین پولش رو میدین یا عجله دارید بفرمایید پولش رو هم من میدم کاش <laughs> چیز بهتری می گفت مثلا همین یک قلم اگر اجازه بدید یا همچین چیزی. ببینید نایس بودن به معنی پیشگیری از تننش یا برخورد های اجتماعی نیست. چه واهمه ای وجود داره از اینکه در جامعه سری برخوردم وجود داره چه نفر آدم یعنی چهار نفر به همدیگه یه چهار تا چیز نخوشایندن بگن تا زمانی که این باعث کترکاری و کشته شدن جراحت و حالا جراحت چه عاطفی و چه بدنی نشه من فکر میکنم اینا بخشی از انسان بودن ماست بله ما،, ما حیوان هم هستیم به نوعی در جامعه که زندگی میکنیم حیوانی هم هست جنگل هم هست ولی در این حال انسان هم هستیم فکر هم میکنیم حیوان که ویبلاگ و پادکست نداره بنابراین شما که این پادکست رو گوش میدین قاعدتاً فکرم میکنید مگه خود فکر کردن حرکت نیست تمایز بین حرکت و فکر کردن دقیقاً چیه تو کجاش ذهنیه از سابجکتیوه از کجا به بعد میشه آبجکتیو و فیزیکی این, این مرزا تو ذهن شما کاملاً مشخصه بازم تکرار میکنم نایس بودن به این معنیه که عملی به وجود میاد اکسل عملی داره ولی اون عمل و اکسل عمل در کانتکستی ما میتونیم قرارش بدیم که باعث جراحت نشه باعث عواقب ناخوشایند بعدی نشه چرا؟ به خاطر اینکه ما در جامعه زندگی میکنیم که اگر شما اکسل عمل غیر نایسی نشون بدید عواقبش یک جایی مثل کارمای بعد یقتون رو میگیره و باید هزینهش رو بپردازید. اگر اوکی هستید با دادن این هزینه، غیر نایس بودن هم میتونه توجیه داشته باشه. من نگفتم که همه باید نایس باشن، نگفتم که نایس بودن یک پروژه ملیه که از این به بعد همه باید اجرا بکنن. گفتم پروژه شخصی من این بود که تر باشم، تر باشم یعنی اینکه نایس نبودم تا حالا، حالا دارن تمرین میکنم که یکم بیشتر نایس باشم. کلمای انگلیسی هم تو دلتون بخواد به کار میبرم به خاطر اینکه بخشی از زبان ماست فاطمه هی جیمی سلام دو سه روز پیش بعد از مدت ها به معنای واقعی کلمه عصبانی تو پرانتز عصبانی شدید نشدن این اتفاق برام نمیدونم نشدم منظورش بوده احتمالاً این اتفاق برام افتاد و از این امتحان سربلند بیرون نیومدم و دوباره خلقیاتی که یک دو سال پیش خیلی باهاش دست و پنجه نرمی گریبان گریبانگیرم شده بود <تصفح> و متاسفانه اونقدر عصبی بودم که تمام چهرم سرخ شده بود و هم کلاسی هام رو به یاد یکی دو سال قبل میانداخت هیستوری داره این خانم. البته درسته که در اون لحظه غیر موفق عمل کردم ولی طی این مدت بودن یک سالهی که تصمیم گرفتم بیشتر حواسم به حرفها و حالاتم باشه سرجم وضعیت واقعا, راز واقعا رازی کنندهی پیدا کردم و میشه گفت آدم نایستری شدم آفرین به نظر خودم نقطه شروعش از اونجایی بود که یک نفر بعد از کلاسی که توش نظرات زیادی رد و بدل شد به من گفت تو اون وسط چی میگفتی؟ و خوبی می پرسش انگاری همراه با تنش شوکه عزیمی رو به من وارد کرد و باعث شد جلوی خیلی از چرت و پرت گویی هام رو بگیرم از حدود 38 39 روز پیش هم چقدر دقیق اون ایده 21 روزه قرنظن رو اجرا کردم و تا الان بیشترین مدت زمانی که قرنظزدم خوردن دو روز و نیم بوده که البته دیروز از من رفت و الان حدود 20 ساعته که قور نزدم البته من سعی کردم واقعا سختگیرانه عمل کنم حتی نسبت به یک پوف پوف کوچولو حتی نسبت به یک پوف کوچولو اما یک جایی هم هست دستو دل بازی هایی داشتم ولی در کل فهمیدم که گاهی تشخیص دادن قرقرها خیلی سخته و فکر می کنم بیشتر هایی که خودم در سطح اینترنت منتشر میکنم کنم پر از قُرز هایی درباره زندگی شخصی و همین نوشتن رو خیلی سخت کرده چون باید احساس می چون احساس کنم باید وسواس بیشتری برای اسوال نظر بخرج بدم اما هنوز به یک ایده واحد که از چه باید نوشت یا گفت نرسیدم اصلا وصفاس بیشتری به خرج نده هرچه میخواهد دل تنگت بگو Xxx کامنت بعدی با ابجکتیو بودن به خودتون لطف میکنید یا طرف مقابل نایس بودن چه اثری روتون تون داره به خودم لطف میکنم اثرش اینه که گریبانم رو عواقب نایس نبودن نخواهد گرفت مرتزا سلام من در تصمیمی کاملا مسلحت جویانه با خودم قرار گذاشتم در موارد کوچک به خصوص صف فکرای تاکسی از حق خودم بگذرم و به افراد به اصطلاح متجاوز هیچ واکنشی نشان ندهم مثلا ماه پیش من برای رعایت حریم خصوصی خانومی که از خودپرداز پول میگرفت چند متر عقبتر ایستاده بودم که آقایی پشت سر خانم خانم رفت بدون رایت کامل حریم خصوصی و قبل از من پول گرفت و من با دقت در چهره و رفتار او اصلا اثری از قیافه هیتلر یا چنگیز نیافتم فقط عجله داشت و اصلا مطالعه رفتار متجاوزین و شرمندگی ظاهری بیشتر آنها یکی از اهدافم شده لطفا نصیحت نفرمایید کاملا با این موضوع من اوکی هستم متوجه شدید نصیحت نکنید آقای مرتضا در رانندگی هم اول مسیر, اول مسیر با خودم می فقط هدفم رسیدن به مقصد است و رسالتی برای ارتقای فرهنگ ترافیکی و آموزش همگانی ندارم یا yeah, I love being invisible there. there. is no responsibility in it. No, no one to save. No one to teach. How objective. How objective, Murtaza. How objective you are. و با ده سال تخفیف بیمه شخص سالیس و آکماندن بوق خودرو قدیمیم بیشتر به درست بودن تصمیمم واقع می شود. شما ستودنی هستید در زمین همیشه کسی پیدا می شود که صبر من را نداشته باشد و برای انسانیتر نشان دادن اقدام خود از حق سایرین دفاع کند منظورش منم اتمن مثلا همین آقا حسن خودمان که در این ویبلاگ از حق ما خانندگان دفاع میکنند البته هرچند این تصمیم را ابتدا مسلحت اندیشانه گرفتم ولی بعد دلایل خیلی خوبی برای پیدا کردم مثلا در تحقیقی که در جاهای مختلف جهان انجام دادند که یک خصلت مشترک در تمام محله های فقیرنشین جهان مستقل از دین و ملیت پیدا کنند به این نتیجه رسیدن که همه آنها دست بگیر داشتند یا به عبارتی از آخرین میلیمترهای حق خود دفاع میکردند در حالی که تمامی چرخهای جهان موقعی خوب میچرخند که اندکی فاصله بین قطعات متحرک باشد و شاید روزی کمپین عدم دفاع از حق خود را راه بیاندازم. حتما چرا این کار نکنید؟ چرا این کار نکنید؟ من فقط،, من فقط با این تیکه مشکل دارم که تحقیقی نشون داده که ویژگی محله‌های فقیرنشین جهان مستقل از دین و ملیت این بوده که همشون دست بگیر داشتن. مطمئن نیستم راجع به این. Does it make sense? محمد ممنون است توجه شما دوست خوبم. این در جواب یه دوست دیگه است که بزarin اول اون رو بخونیم. سجاد دوباره گفته سلام بزرگوار من از این لفظ بزرگوار خوشم نمیاد حس میکنید طرف شما با کنایه و قصد بدی از این کلمه استفاده میکند به هیچ وجه من همچین حسی ندارم من از این کلمه فرخوشم نمیاد چون در جامعه این کلمه را به گناهی تعنه‌دار شنیدید به هیچ وجه بس که شما در صحبت ها و افکارتان با کنایه و تهاجمی حرف میزنید تو پرانتز دوباره استخان تو هم نرم است همه که نمیتوانن نمیشود تب میل و خواست شما کلمات و حرکات و رفتار و کردارشان را تطبیق دهند من نگفتم تطبیق بدهند من, من تقاضا نکم دیگه بزرگوار رو به کار نبرند گفتم خوشم نمیاد آیا من این حق رو دارم که از یک کلمه خوشم نیاد؟ اگر من مینویسم گذشت و صبر و فروتنی و پایین آوردن حساسیت مخصوصا در مراوده با حیات وحش انسان نه اینکه من و امثال من ادعای تطهیر و خدایی و ملایی بودن داریم خیر ولی به نظر میاد دارید چون پوزیشن شما برای ما هم تجربه شده و قابل درک هست می نویسیم, می نویسیم. می بوده. و هر وقت هم از خیلی جوابهای سربالا و پوزخندهای فلان اداره تو پرانتز با کس قبلی گذشت کرده ایم صبر داشته ایم و تحملی و مسئله رو درون خود و در آن موقعیت حل کرده نه با مقابله به مثل تو پرانتز ما هم پول میدیم بوس که نمیدیم هیچ کار خیر و صحیح برای خود و خدای خود نکرده باشیم اگر آوردن خدا به عنوان کلمه معنیدار و زنده به شما برنخورد نه برنخورد باید ببینید چرا خاطره تصویری از حرکات و کلمات انسان در ذهن من و شما را آزار می با پوشاندن حقیقت با کلمات نایس و فرموفوبیا که مسئله را دور می‌زنیم. آه من که نفهمیدم چی شد در جواب محمد گفته ممنون از توجه شما دوست خوبم من به علی آقا توضیح دادم که منظور از بزرگوار چیزی در مایه های ارجمند و عزیز و گرامی و گرامایی میباشد و نباید حساسیت داشته باشند ولی من همچنان حساسیت دارم از کلمه بزرگوار خوشم نمیاد و ایشون هم با نایسی تمام اکنون میدانند که بزرگوار هم کلمه است از باب ارادت باستشو بخواید قبلا هم میدونستم که بزرگوار چه کلمه است. در هر صورت از این کلکل کامنتی که بگذاریم همونطور که گفتم کامنت های شما و ایمیل های شما باعث میشه که کار من راحت تر بشه و اونا رو بخونم و به اونا جواب بدم همچنان منولوک برای من سخت در این این پادکسته که امیدوارم با تمرین تمرین و تمرین بهتر بشه اگر میخواید کار منو راحت تر بکنید به 822.at.alisekhawati.com ایمیل بفرستید یا در پست این هفته ای این پادکست روی وبلاگ کامنت بذارید اگرم میخواین کار من سخت در باشه ایمیل نزنید و کامنت نذارید تا هفته بعد خدا حافظ